یتلو عليهم آیاته ویزكیهم ویعلمهم الكتاب والحكم وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبین وآخرين منهم لما يلحقوا بهم و هو العزیز الحکیم در سوره های موضوع, موضوع جهاد بود و چهار سوره آینده موضوع انفاق مطرح میشه بحث میشه از آن جایی که انفاق لازمه جهاد هست اما در ابتدای این سوره مبارک سوره جمعه که این سوره از مسبحات است پاکی و توحید پروردگار بیان میشه قبلا حکمت و علتش بیان شد که تسبیح خدا توحید خدا در ابتدای سوره ها بیانگر این واقعیت هست که جهاد، انفاق، احکام دیگر، دستورات دیگر برای احیای توحید هست برای اینکه که خداوند عزوجل و یگانگی شناخته بشه و در ذات و صفات پروردگار احدی را با خدا شریک قرار ندهند سوره مبارکه جمعه سوره مدنی هست در مدینه منوره نازل شد و از نظر ترتیب جز آخرین سوره ها هست یک سوره هست که بر آن حضرت صلی الله علیه وسلم نازل شد بعد از این سوره چهار سوره دیگه نازل شد لذا خلاصه این سوره اول موضوع توحید بیان میشه همونطور که قبلا ارز کردم دلیل وحی می آید و بعد بیان صداقت رسول الله صلی الله علیه و سلم و زجر و توبیخ بر مشرکان و بر یهود که بزرگترین دشمنان آن حضرت بودند و بعد دعوت مباهله یهود یهود <تصحنت> دعوت داده میشه به بسوی مباهله که اگر راست میگویید و شما در مسیر حق و حقیقت قرار دارید بیایید از خدا موت بخواهیم از خدا مرگ بخواهیم یا هلاکت برای هر کسی که بر باطل است و در آخر سوره آخر سوره در باره جمعه هست از آنجایی که موضوع موضوع مهمی هست مسئله جمعه و دعوت به جمعه لذا این سوره نامگذاری شده به سوره جمعه و از فضائل این سوره که آن حضرت صلی علیه و وسلم در نمازهای جمعه بکسترت در رکعت اول سوره جمعه را می در رکعت دوم دو سوره منافقون که بعد از این می آید. لذا مطالب مبارکه این سوره الله عز و جل می فرماید یسبح لله ما فی السماوات و ما فی الارض الملک القدوس العزیز الحکیم تسبیح می قالا و حالا قالا و حالا بسیاری از مخلوقات بزبان قال مثل انسانها فرشتها جنات بسیاری از پرندها انهایی که خدای تعالی بی قال داده و آواز داده صدا داده و بسیاری مثل جمادات درختان و غیره حالا تسبیح خدای عز و جل را و مفهوم تسبیح را هم قبلا گفتیم خدمت شما که تسبیح یعنی پاکی خدا پاکی خدا از شریک پاکی خدا از همسر پاکی خدا از پسر و دختر پاکی خدا از نائب معاون معین از هر ایوب و مسائلی که جز حوائج هستند احتیاجات هستند از همه و همه الله عزوجل پاک هست. یسبح لله تسبیح میگوید و پاکی خدا میگوید برای خداوند ما فی السماوات و ما فی الارض تمام اون که در آسمان ها هستند و در زمین هستند همه پاکی و توحید خدا را میگویند ولی متأسفانه بسیاری از انسانهای نادان هستند که خدای عزوجل را پاک نمیدانند بلکه خدای تعالی را برای خدا شریک اثبات می کنند یکی میگه جنات دختران جنات همسران خدا هستند فرشتگان دختران خدا هستند دیگری میگوید که عزیر فرزند خدا دیگری میگه مسیح فرزند خدا دیگری میگه فلان اولیا نائب خدا فلان فرد معین خدا دستیار خدا العیاظ بالله چه چی چیزهایی که مردم درست نکردند لذا همه زمین و آسمان می به بیان پاکی ولی انسان ناسپاس و انسان ناشاکر این انسان بجای اینکه پاکی خدا را اعلام کند، بیان کند، ورد زبان کند، او بر زبان خودشگاهی شرک را جاری می کند لذا پاکی خدا بیان می کند، تمام آنچه که در آسمان ها و زمین است کدوم خدا، الملک القدوس العزیز الحکیم صفات خدا بیان شده، صفات لفظ جلاله الله، بعضی صفات ثبوتی اند، بعضی سلبی اند، اون خدایی که الملک پادشاه مطلق است، قدرت مطلق و اختیار مطلق در دستان او هست، القدوس، این صفات سلبی اون پادشاهی که پاک هست، مقدس هست، منزه هست، از تمام عیوب و از تمام علا و اشکالات او بدور هست العزیز الحکیم ذاتی که غالب هست هر کاری میتواند بکند دشمنان خودش را میتواند که پودر بکند نابود بکند اما الحکیم کارهایش مملو از حکمت همرا با حکمت هر کاری را میکند از روی حکمت و تدبیر انجام میدهد هو بعث الأمينا رسولا این بود توهید هو الذيبعث الأمي رسولا ان رسالت. بعد از توحید بیان رسالت هست و این دلیل وی هست الله عز و جل می فرمایت که خداوند اون ذاتی هست که در میان میلیین رسولی فرستاد در میان میین اممینی چه گرچه معنای امی هست ناخان بی سواد به مکتب نرفته درس نخونده اما امی منصوب است به ام و ام یعنی مادر بعضی وجه تصمیع این گفتند چون که عرب ها زن ها نمی گذاشتند که درس بخونند معمولا مادرها بیسواد بی سواد بودند ناخان بودند لذا کسی که بی سواد بود اون را گفتن امی یعنی مثل مادران گرچه این امی بودن را برای خودشون افتخار میدانستند. یعنی یکی از افتخارات عرب در اون زمان امی بودن بود بی سوادی بود میگفتند ما امی هستیم نحن امت الامیون در حدیث هم آمده خدای عزوجل در میان این امیین رسولی که از خود ام امیین هست فرستاد در اون زمان افراد باسواد نبود خیلی کم بود در تفاسیر میاد زمانی که رسول الله صلی الله علیه و سلم مبعوث شدند در مکه مکرمه فقط سیزده نفر بود که خواندن و نوشتن بلد بود یعنی افراد باسواد در مکه فقط سیزده نفر بودند بقیه همه بی سواد فکرش را بکنید بین چند هزار نفر فقط سیزده نفر اما این دین گرچه پیامبرش امی هست البته معنای اینکه پیامبر امی هست به معنای بی سواد نیست این را ما همیشه تاکید می کنیم امی به معنای مکتب نرفته به دانشگاه نرفته به درس نرفته نه اینکه که بیسواد بعضی ها پیغمبر را ترجمه میکنن ام نبی الامی میگن نبی بیسواد کفار هم مسخره میکنن میگه پیغمبر شما بیسواد است، پیغمبر ما بیسواد نیست امی هست به این معنی که به مکتب نرفته خدای عزواجل مستقیما خودش او را آموزش داد یعنی بلا واسطه همه انبیا امی بودند هیچ پیغمبری پیش پیش اصطادی شا... زانو نزده. همه پیغمبران مستقیمن از خدای عزو جل درس گرفتند. الله تعالی در قرآن می از آدم می فرمید و علمک ما لم تکنتع و علم آدم الاسما و علم آدم الاسما به آدم که علم یاد الله یاد داد علم اسما و اشیاره در باره یوسف علیه السلام الله تعالی می فرماید و يعلمك من تاويل الاحاديث خدا علم میده خدا تعلیم میده به حضرت داوود الله تعالی می فرماید وعلمناه صنعه لبوس ما بيو دادیم زره درست کردن را و در باره خود رسول الله صب شما خواندید وعلمك ما لم تكن تعلم وكانا فضل الله عليك عظیما خدا به تو ای محمد صلی الله علیه و وسلم تعلیم داد یاد داد اون چیزی که نمیدانستی پس ببینید معنا امیره به بی, بی سواد ترجمه کردن غلطه پیغمبر سواد داشت ولی سوادش را مستقیما از الله عزوجل گرفت قرآن میگه وعلمک ما لم تکن تعلم اولین آیه‌ای که بر رسول الله نازل شد درباره سواد بود اقره بخوان بس سواد و علم و دانش در اسلام جایگاه ویژه ای داره. بنده از کردم افتخار میکردند، عربها افتخار میکردند. برای مسلمان بزرگترین افتخار اینه که کتابش با اقرع با دستور خواندن شروع شده و آغاز شده. لذا پیغمبر بزرگترین عالم هست ببینید امروز تمام علوم علوم شرقی و غربی تمام علوم اسلامی منبع و مصدر همه و همه قرآن و سنت از قرآن و سنت علم پیانبره علمی هست که خدای عزوجل و به رسول الله دادند از زمانه از هزار سال پیش تا به امروز هزاران شرح نوشتن بر آدیس و بر کلماتی که رسول الله صلی علیه و وسلم بیان فرموده از هر ای، از هر حدیثی ده مسائل استنباد میشه آیا چنین پیغمبری که منبع علم هست درسته بیش گفته بیشه بیش بیسواد؟ غلطه هر کس امی را ترجمه می کند خصوص نسبت به رسول بی بیسواد چرا امی به معنی مکتب نرفته به درس نرفته به دانشگاه نرفته ولی خدای عزواجل همه علم را به او یاد داد همه چیز را بهش یاد داد که امروز تمام دنیا هر چی که منویست از علوم نبوت همه اون که ما میخوانیم ده سال دوازده سال میخونیم بعد از اون چهار سال پنج سال تخصص خوانند. بعد از اون سی سال چهل سال تحقیق میکنند باز هم به یک بخش کوچیکی از علم نبوت نمیرسند پس واقعا علمی که رسول الله صلی الله علیه وسلم داره بیکران است ولی علمش را از استادی از جن و انز نیا مختی یاد نگرفته از الله یاد گرفته و علمک ما لم تکن تعلم بنابراین الله عزوجل مبعوث فرمود در میان امیین رسولی از خودشان منهم از خودشان اشاره به بشریت رسول هست یعنی همون طوری که امیین بشر هستند رسولشون هم بشر هست هیچ وقت انتظار داشته نباشند که پیغمبری از جنس ملک و فرشته بیاید برایشون یا از جنات بیاید یتلو علیهم آیاتهی فریزت الرسول را که چار تا هستن قبلا ما خواندیم این فریزه رسول را اینجا می خانیم یتلو علیهم فریزه اول این پیامبر آمده برای اونها آیات پروردگار را تلاوت می کند و یزکیهم و آنان را تذکیه می کند. یعنی از عقائد باطل و اخلاق زمیمه پاک می کند. ببینید ما باید به وسیله این آیات هم از عقائد و خرافات پاک بشیم و هم از اخلاق ناجور از اخلاق زمیمه اخلاق بد چی هست؟ تمام مفاسد اخلاقی هست از از کنم که مفاسد اخلاقی گرفته تا مسائلی که عموماً در جامعه ما بد اخلاقی هایی هست مثل دروغ، مثل تعمت، مثل وعده خلافی، مثل بحتان، مثل سوء زن و بدگمانی، مثل غیبت کردن، اینا تمام جزی اخلاق زمیمه هست که رسول الله آمده انسان ها را از اینها پاک بگرداند ببینید چه کسی تعلیم رسول الله را میپذیرد و خودش را از این آلائش ها پاک میکند و یعلمهم الكتاب و وظیفه سومی این پیانبر ما این هست که کتاب را تعلیم میدهد. مطالب کتاب یعنی قرآن را برای مردم بیان می کند رسول الله بزرگترین مفسر قرآن لتبین لتبینه للناس این کتاب را نازل کردیم تا که برای مردم تبیین بفرمایی تفسیر بکنی و الحکم و فریزه چارم اینه که حکمت و دانایی را به مردم نشان میدهد. حکمت و دانایی را یا اینکه راهای عمل کردن به کتاب که همون سنت باشه کتاب وقتی که دستور میده به وسیله سنت نشون میده که چطور به این کتاب عمل بکنید و انکانو من قبل لفی ضلال مبین الله می فرمای را ما فرستادیم با این چار موضوع گرچه این امیین قبل از بعثت رسول الله در گمراهی آشکار بودند سبحان الله انسان ببیند احوال جاهلیت را که قبل از اسلام چی بود بعد از اسلام چی شد از کجا به کجا رسیدند رهننان از حفظ او رعب شدند از کتابی صاحب دفتر شدند بعد از اینکه رسول الله آمد و این امیین را ساخت اینها را تزکیه کرد اینها را اصلاح کرد قبلا به قول عمر فاروق رضی الله تعالی او چطور چرانی بلد نبودند بعدن لگام انسانیت شرق و غرب ایران و روم را الله به دستشون داد و تمام انسانها با اشاره اونها کار میکردند. از این جایگاه شتربانی و شطرچرانی و گوسفنچرانی به این جایگاه رهبریت عالم به برکت همین تعلیم همین تزکیه همین تلاوت رسیدند. گرچه قبل از این در گمراهی آشکار قرآن میگه بودند زمان صحابه را قبل از بعثت رسول الله چی میگویند زمان جاهلیت میگویند چون در جاهلیت محض هستند اما بعد از اسلام الان ما چی میگیم اهد صحابه را خیر القرون میگیم خیر القرون یعنی بهترین زمان اون چی چیزی بود که از جاهلیت به خیر القرون تبدیلشون کرد اون چیزی بود که از عربهای وحشی به یاران و اصحاب رسول الله تبدیلش کرد همین چار وظیفه بود لذا ما هم اگر اینها را پی بگیریم در وجود خودمون در زندگی خودمون پیاده بکنیم همون طور می درخشیم و آخرین من هم این مطلب مطلب جدیدی هست که شما در گذشته نخاندید ببینید پیامبر مبعوض شده اینجا خاندید فی الامیین کسی بگوید که این پیامبر فقط برای عربها آمد، برای اهل مکه آمد. یک مطلبی فراموش کردم که بعضی میگن امیین را به خاطر بیسوادی نمیگویند امیین، بلکه به خاطر اینکه اهل مکه هستند. چون که نام دیگر مکه هست؟ ام قرا هست. نام دیگر مکه چیه؟ ام قرا هست. ام قرا یعنی مرکز تمام قریه های دنیا، تمام شهر دنیا در مرکزیت مکه قرار دار از نظر جغرافیایی هم در مرکزیت است از نظر علماء وقتی که مناطق را تقسیم می از جهت های مختلفی مثلا از جهت فلکیات علماء که فلکیات و ستاره و خورشید و ماه و رؤیت ماه مکه در قلب واقع است در وسط واقع است منطقه اول منطقه دوم دو منطقه سوم مکه در منطقه دوم است و همچنین به همین خاطر چون اونها مکی بودند مال ام القرى بودند به اونها میگه امیین یعنی اهل مکه خداوند این پیامبر را در میان اهل مکه نازل کرد خب این سوال میشه که پس پیامبر برای اهل مکه هست پیامبر برای عرب ها هست خداوند می فرمنا و آخرین من هم لما يلحق بهم یعنی بعث فی الامیین و بعث فی الاخرین این اطفس بر امیین خداوند این پیامبر را فرستاد هم در میان امیین و برای انسان های آخرین آخرین کی غیر از اون امیین اونایی که هنوز رسول الله را ملاقات نکردند ماها هستیم بعد از اهد رسول الله، هر مومنی که آمده تا قیامت آخرین انسان اینا جزه همه آخرین هستند پس الله تعالی این پیانبر هم برای امیین فرستاد هم برای آخرین فرستاد که ماها باشیم ما هم باید همین درس هایی که پیامبر برای ما گذاشته این درس ها را پی بگیریم این وظایفی که جز وظایف رسول الله این ها را در وجود و در زندگی خودمون داشته باشیم و آخرین من هم، انسان های دیگری از آنها که لما یلحقو بهم هنوز ملحق نشدن به آنها یعنی به آنها نپیوستند برای آنها هم پیغمبر مبعوث شده و هو العزیز الحکیم الله انزاتیس کے غالب هست و کارهای الله با حکمت هست. ذالک فضل الله یوته می‌یاشا. ببینی بقیه پیغمبران هر یک برای قومی نازل شد، مب شد موسی میگه یا بنی اسرائیل، عیسی میگه یا بناي اسرائیل، اینی رسول الله ایلکم، عزت الهود میگه یا قوم، عزت سالم میگه یا قوم. هر یک برای قومی، برای یک قبیله ای برای یک شهری برای یک روستایی اما رسول الله صلی الله علیه وسلم آله و ویجگیش اینه که و ما ارسلناک الا کافتا للناس برای همه مردم لذا این که عمومیت است برای همه مبعوث شده ذالک فضل الله این فضل الله است یاتیه من یشا هر کسی را که خدا بخاطمی میده این فضل را خداوند به محمد صلی الله عليه وسلم داده والله ذو الفضل العظیم الله عزوجل وجل دارای فضل عظیم هست اما کسانی که میشناسند و میدانند که این فضل را خدا ن به پیغمبر داده ولی باز هم انکار میکنند ملاهای یهود آخندهای اهل کتاب اینهایی که میدونستند پیغمبر را شناختند و علائم نبوت را در وجود رسول الله دیدند علائمی که در تورات انجیل بود دیدند باز هم ایمان نیاوردند کتمان کردند به اون علمی که داشتن به علم خودشان عمل نکردند خدای عزوجل اینجا اونها را سرزنش می‌فرماید عتابی می‌فرماید توبیخ می‌کنه اللّه می‌فرماد مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها مثال آنهاي که حمل شدن تورات یعنی تورات بدون شانها گذاشته شد، ثم لم يحملوها سپس حمل نکردند یعنی به تورات عمل نکردند کمثل مثل الحمار مثال انها مثل اولاغ هست. الله عزّ و جل انسان را که اشرف مخلوقات است انسان از همه مخلوقات بهتره اما وقتی که مسیر انسانیت را ترک بکند از حیوانات هم بدتر می نامد از حیوانات هم بدتر می داند ببینید هر حیوانی در یک چیزی معروف است مثلا روباه مکار است فلان حیوان قدرت داره فلان حیوان زرنگ است اولاغ در صفاهت و احمق بودن معروف است کسی که نادان و احمق باشه تشبیهش میدن به اولاغ از همه ایوانات احمقترینش الاق هست لذا خداوند اززوجل اینها را که ببینید هم انسان بودند بعد از انسانیت عالم بودند بعد از عالم بودند عالم به تورات بودند یعنی به کتاب خدا بودند اینها همه فضائل هستند انبیازاده بودند تمام ابا و پیغمبران بودند ولی وقتی که انسان هر که باشه هر نسبی داشته باشه هر علمی داشته باشه هر کتاب و دینی داشته باشه تمام کتاب های آسمانی تو سینش باشه اما وقتی که دین فروش باشد وقتی که واقعیت را کتمام بکند وقتی که حقیقت را به مردم نگوید این دیگه از همون احمق هم احمقتر میشه از الاغ هم بدتر میشه الله تشبیه داده اینجا کمثل الحمار مثال این عالم ها و آخندهای که آخند و آلم تورات هستن اما بی تورات عمل نکردن ثم لم يحملوها حمل نکردن یعنی عمل نکردن مثالشون که مثل الحمار مثل اون اولاغی هست که يحملو اسفارا حمل می کند بار کتاب شما یک خروار کتاب بر پشت اولاغ بزار. این کتاب تمام کتاب های دینی باشن، علمی باشند به اون اولاغ نفی می رسد ان را الله عز وجل می فرماید که انا عالم بودند تورات را حافظ بودند اما چون که به این عمل نکردند در عدم نفس در نفر نگرفتند مثل همون حیوان هستند يحملوا اسفارا و خداوندی عز وجل می فرماد بیس مثل القوم الذين كذبوا بآيات الله بسیار بدست مثال قومی که تکذیب کردند آیات خدا را اینایی که تکذیب کردند چون قران را تکذیب کردند، رسول الله را تکذیب کردند، خداوند می این مثالشون هستی و این مثال مثال بدیار بدی هست. خداوند یک عالم را از حق پوشی و کتمان حق نجات بده. بدترین مرض اینه، اون وقت این عالم بدترین میشه، بهترین نیست. درسته که کسانی که بر علم عمل میکنن بهترین هستند، افضل تر استند، والذین اوت علم درجات کسانی که اهل علم هستند خدا بهشون درجات داده. اما وقتی که به علم عمل نکنند مثل اولمای ایهود واقعیت را به مردم نگویند. الان خیلی هستن واقعیت را میدونن، میدونن در قرآن واقعیت چیه، در باب توحید واقعیت چیه، در بار رسالت چیه، در باب صحابه واقعیت چیه. خیلی ها هستند واقعیت را به مردم نمیگویند وقتی که واقعیت را مردم نگویند الله عز و جل می فرماید بیس مسل القوم الذين کذبوا بآيات الله بسیار بد و زشت است مثال و صفت قومی که تکذیب میکنند آیات الهی را والله لا یهدی القوم الظالمین خداوند چنین قوم ظالم را هدایت نمیکند یعنی توفیق نمیده به هدایت کرد. این هیچ وقت بر مسیر هدایت قرار نمیگیره این تو همون تعصبش گرفتار تو ضد و انادش گرفتاره بعضی وقت از مردم بعضی ها گرفتار تعصب میشن میگه نکن که خدا ناراضی میشه میگه من اگه به جهنم برم هم حرفم همینه یعنی اینقدر بعضی تعصب داره نه پس اینا میدونن که به جهنم روند. بعضی ها کتمان میکنند لذا الله می فرماید خداوند چنینین قومی را هدایت نمی فرمائی توفیق هدایت نمیده. و بدتر از این اینه که بر مسیر گمرایی است باز خودش را بر حق هم می دارد. و اونهای که بر مسیر حق هست اونها را گمراه می خداوند خدا عز و جل می شما این یهود را که خودشون را بر مسیر حق و ایمان می بگو بیاید مباهله بکنیم مباهله را قبلا خاندیم یعنی بیایید تغازای مرگ بکنیم از خدا برای هر کسی که باطل است ببین میاند از مرگ میترسند نمیایند و چند بار شما خواندید این خسلت یهود است که این قدر از مرگ که یهودی ها میترسند حتی مشرکان هم نمیترسند که اعتقاد به قیامت نداره یهود که اعتقاد داره به قیامت با وجود که اعتقاد به زنده شدن بعد از مرگ را داره ولی بازم از مرگ میترسه یود احدهم لو يعمره الف سنه هر یکی دوست در هزار سال عمر کنه لذا الله می فرماید قل يا ايها الذين بگو ای کسانی که یهودی شدید این زعمتم انکم اولیاء الله. اگر شما میپندارید شما فکر میکنید که شما اولیای خدا هستید دوستان خدا هستید من دون الناس به از مردم مردم نیستند یعنی مسلمانان نیستند رسول الله و اصحاب نیستند شما دوست خدا بیایید فتمنو الموت تمنای مرگ بکنید فتمنو الموت علی الکاذب بر هر کسی که دروغ میگوید این کنتم صادقین اگر شما صادق هستید شما محبوب خدا شما اولیاء خدا خب اولیاء خدا نباید از مرگ بترسند اولیاء خدا بعد از مرگ راحت تر می شما چرا میترسید الله می فرماید ولا يتمنونه ابدا بما قدمت ایديهم این پیشگویی پروردگار است اینا تمنا نمی اون مرگ را ابدا هرگز چرا به قدمت عیدیهم به سبب عمل کردشان به سبب اون که دست انجام داده یعنی به سبب اعمال کفریه و شرکیه به سبب اعمال کفریه و شرکیه هیچ وقت اینها تمنا مرگ نمی چون می که پیامبر خدا نبی خدا شناختند ولی ایمان نیاورده می بعد از مرگ بدبختی هست اما گرفتار تعصب شده اللہ می فرماید والله علیم به خداوند خوب میداند این ظالمین را خوب میداند که اینها هیچ وقت تمنای مرگ نمی کنند ولی تو ای یهودی بیچاره تمنای مرگ نکنی از مرگ فرار بکنی آخر نجات می همونها همونهایی که از مرگ می همه مردند امروز نام و نشانی نیست ما که از مرگ می ترسیم هم میمیریم همه میمیرند قل ان الموت الذي تفرون منه بگو همانا مرگ آن مرگی که شما فرار میکنید از آن مرگ فانه ملاقاتیکم همانا اون مرگ ملاقات کننده شماست ببینید فرار کردن از مرگ بد نیست فرار کردن از مرگ خداوند در فطرت ما گذاشته به ما دستور هم داده که فرار کنید برای هیچ انسانی درست نیست جایز نیست که تمنای مرگ بکند خدایا برای ما مرگ بیار کسی بگه این جایز نیست لذا تمنای مرگ نفس تمنا اشکال دارد حتی به ما دستور داده شده که اگر ما مریض شدیم مریضی مقدمه مرگ هست یا نیست اگر مریض شدیم به دکتر بریم دوا استفاده بکنیم اگر خطری ما را تهدید میکرد خودمون را از خطر دور کنیم اینا همه به خاطر این هست که باید از مرگ گریخت اما گریختن و فرار کردن از مرگ به معنی این نیسته که انسان آخر نمی میرد. انسان آخر می میرد. ولی برای بعد از مرگش فکر کند خداوند می فرماید قل ان الموت الذي تفرون من ہو بگو اون مرگی که شما فرار می کنی فا انه ملاقی کم اون مرگ شما را ملاقات می کند ثم تردون الى عالم الغیب والشهاده سپس شما فرا می شوید در محزر اون ذاتی که عالم الغیب والشهاده هست هم غیب می داند هم حاضر میداند، هم مخفیات شما را میداند هم ظواهر شما را میداند منظور اینه که انسان به فکر بعد از مرگ باش چون بعد از مرگ در محضر ذاتی حاضر میشی که از اون اعمالی که در تنهایی انجام بدی هم خبر دارد اون اعمالی که در مرد جلوئے مردم انجام میدی هم خبر دارد اون که در خلوت میکنی هم خبر دارد اون که در خلوت میکنی هم خبر دارد یعنی موعظه باش خدا از خلوتت هم خبر دارد ثم تردون الی عالم الغیب والشهاده نفرم ثم تردون الی الله بلکه ثم تردون الی عالم الغیب والشهاده فرمود یعنی اون ذاتی که از غیب خبر دارد و اون ذاتی که از حاضر و از ظاهر خبر دارد به اوکنم به تعملون خداوند شما را خبر میدهد به اونچه که شما عمل می در دنیا می گوید انسان چیکار می کردی؟ چه میخوردی؟ چه میپوشیدی؟ چه عملی می, می, عمل می کردی؟ ظاهر چی بود؟ باطن چی بود؟ همه را خدا خبر میده. لذا پس بیایید، معنی آیه این میشه، بیایید ظاهر و باطنتون را مطابق مرزی خدا بکنید، مطابق رضای خدا رفتار بکنید. یا ایوها الذین آمنو اذا نودی لصلاة من یوم الجمعه، از این به بعد بحث نماز جمعه هست، اما ربطش کسی شاید از شما فکر بکنه که خب این ربط نداره قبلا در باره بیست رسول الله است، الان در باره نماز جمعه است، نه ربط داره، ببینید اونجا شما خانده، هو الذي بعث في رسولا اونجا فرائز معلم را میخوانید هو الذي بعث في الاميين رسولا خداوند در امیین رسول فرستاد رسول کی معلم میماست بعثت معلم رسول الله میفرماید من در میان شما به عنوان معلم فرستاده شدم معلم چند تا وظیفه براش بیان شد 4 تا يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويؤلمهم الكتاب والحكمة حال انجا يا أيها الذين آمنوا إذا نودية للصلاة انجا شما بنسيت فرائز متعلمين يعني معلم كامد الآن شما متعلمين شما شاقردان وظائف شما چيه شما لذا يا الذين آمنوا أي مؤمنان إذا من يوم الجمعة یا جمعه یا جمعه هر ستا لغت درسته به سکون مین به زم مین به فتح مین هر وقتی که شما دعوت داده میشوید شوید برای نماز می یوم الجمعه از روز جمعه فسعو الى ذکر الله بشتابید به ذکر خدا همه مفسران اتفاق نظر دارن که بشتابید به ذکر خدا ذکر خدا خطبه است. لذا وقتی که روز جمعه میشه بشتابید حرکت کنید به سوی خطبه گوش کردن خطبه. اینجا که گفته فصعو إلى ذکر الله، یعنی دوان دوان شتابان به سوی خطبه، امام ابوانیفر رحمت الله میفرماید خطبه گوش کردنش واجبه. ایمده دیگه میگن سنت مأکده امام ابوانیفر میگه چون که اینجا عمر آمده، فسعو الى ذکر الله پس گوش کردن خطبه واجبه و فرمود وزر البعی بعی را ترک کنید، معامله را ترک کنید ترک معامله هم واجبه و انجام معامله حرام است کسی در وقت خطبه معامله میکند این حرامه البته جایی که اونجا نماز جمعه میشه ببینید برای یهود خدای تعالی هم معامله را در روز شنبه یا کار کردن در روز شنبه را حرام کرد اما اون کل روز اینجا برای ما نه برای ما فقط در همون لحظه در همون یک ساعت بعد از اذان، علما می گویند که معامله کردن حرام است متاسفانه ما در روز جمعه, جمعه بازار داریم خب الان قبل از نماز جمعه و بعد از نماز جمعه باشه اشکالی نداره ولی این نماز جمعه همه حجوم است همه مردم اونجا هم هم میفروشند هم میخرند این حرامی معامله هیچ کسی از مسلمانان در اون ساعت برای خرید نره کسی که اعتقادی داره به آیات قرآن در اون ساعت جنسیش را نفروشه این مال مال درستی نیست خداوند میفرماید فسعوا الى ذکر الله و ذر البیع طلاب عطر میفروشند، کلاب میفروشند، کتاب میفروشند، این هم نه در اون ساعت. در اون لحظه این معامله اشکال داره، از نظر شرعی اشکال داره. این پولی که بدست میاد از نظر شرعی اشکال داره. اما اینجا من میخوام یک بحثی بکنم که بعد از کدوم ازان، چون دو تا ازان داریم. یک ازان ازان خطبه هست و یک ازان, ازان ازان اول هست. خب بعد از ازان علماء گفتن که معامل کردن حرام است اصلش و واقعیتش اینه که در زمان رسول الله صلی الله علیه و سلم و شیخین یعنی ابو بکر و عمر خطبه ازان یکی بود همین ازان دوم اما سیدنا عثمان رضی الله تعالی در این زمان دیدن که مردم چون این وقت مسلمانان زیاد شدند در گذشته چند نفر نزدیک مسجد بودند مردم از دور دراز میآیند لذا دستور دادن که قبلا یک اذان داده بشه و گفته بشه تا مردم بیایند به خطبه برسند این اذان در حضور تمام صحابه رسول الله گفته شد هیچ کسی این اذان را رد نکرد و همه این ازان را تایید کردن گویا این ازان به اجماع صحابه گفته شد بعد از زمان عثمان رضی الله تعالی او دیگه ازان اول هم گفته می شد خب حالا با توجب به این که آیه قرآن در اون زمان رسول الله نازل شد اون زمان همون یک ازان بود ازان خطبه بود با توجه به این بسیاری از علماء میگویند همون ازان دوم دو مراد است بعد از ازان دوم دو از به خدمت شما معامله کردن حرام است اگر بعد از ازان دوم دو باشد اون وقت یسیری هست وقت کمی هست لذا بعد از اون آدم ها بشتابند اما بسیاری از علماء گفتند که اگر ما اذان دوم را ملاق قرار بدیم شما فکر بکنید که اذان دوم گفت گفته بشه شما از اینجا به مسجد برید به محل نماز برید شما اصلا به خطبه نمی رسید پس با توجبی اینکه هدف اینه که فسعو الی ذکر الله به خطبه رسیدن است به ذکر الله رسیدن است لذا بعد از اذان اول معامله ممنوع حرام احتیاط هم در همین است چونکه هدف این دستور پروردگار چیه؟ اینه که ما به خطبه برسیم. اگر بعد از اذان اول معامل... معامله بکنیم هیچ وقت به خطبه نمیرسیم. پس اون هدف باید چی بشه برآورده بشه. پس خداوند میفرمایید که فصل ال ذکر الله بش تابید به ذکر خدا به خطبه که در خطبه بعضی ذکر الله قرآن گفتن خب در خطبه قرآن هم خونده میشه. و ذر و تمام معاملات را و تمام اموری که مانع نماز هست، اونها را بگذارید. تنها به معامله نیست، تو خونه یکی کار میکنه، یکی داره گچکاری میکنه، یکی میگه رنگآمیزی میکنم، یکی این معامله نیست، یکی داره برکشیش را میکنه. نه همه کارهایی که مانع چی هستند نماز هستن بذاری به نماز برید ذاركم خیر لکم این کنتم تعلمون این بهتر هست برای شما اگر شما بدونید چون در این نفع دینی شما هست در این نفع دینی شما هست و در معامله نفع دنیاوی شما است. نفع دینی از نفع دنیاوی خیلی ارزشمندتر است پس نفع دینی را همیشه بر نفع دنیاوی مقدم کن بعد از نماز تسکار کن الله بعد از نماز مثل بغیه اقوام ما را ممنوع قرار نداده فاذا قضيه الصلاة وقتی که نماز انجام گرفت نماز تمام شد فانتشروا في الارض منتشر بشید در زمین بریم بگردیم برای خودتون و من فضل الله از فضل خدا بتلبیید یعنی بریم معامله بکنید بریم ببینیم بری معامله بکنید این امر برای اباحت است امر برای وجوب نیست یعنی واجب باشه بعد از نماز جمعه حتما بری معامله بکنی مباحست اما اینجا خدای عزواجل رزق و روزی را فرموده من فضل الله یعنی این وقت اگر شما بری معامله بکنی خدا فضل میکنه بعد از جمعه رزق چون قبل از جمعه تعطیلش کردی قبل از نماز جمعه تعطیلش کردی بعد از جمعه اگر بری خدا بهت برکت میده فضل خدا میشه من فضل الله و یک نکته دیگری که علماء گفتند من فضل الله توجه به کسب و کار است توجه به کسب و معاش است به معامله هست به داد و ستد است. بعضی ها خشکی میکنند تجارت را معامله را کسب و کار را عیب میدانند نه ایچ عیبی نیست بلکه فضل خدا است بلکه معامله چیه؟ فضل خداست، البته زمانی فضل خداست که معنی عبادت خدا نشه اگر داری کسب و کار میکنی، به مسجد نمیری، به نماز جمعه نمیری، به نماز جماعت شرکت نمیکنی اون وقت فضل خدا نیست، اون وقت بلایی هست برای اون وقت همین دنیایی هست که برای انسان توقی میشه فضل خداست اون زمانی که معنی طاعت و بندگی نشود. و موجب ناراضی خدا نشه اون زمان معامله فضل خداست که تو اون دروغ نباشه توش دقل نباشه توش کلاهبرداری نباشه توش فریب دادن مردم نباشه فضل خداست. است وذکر الله كثيرا اما وقتی که میری کار میکنی درست نماز نمیخونی دیگه ولی خدا را به کثرت یاد کن منظور اینه که کاسبای بزرگوار تجار بزرگوار اینایی که مشغول داد و ستدن مشغول بی و معامله هستند اونجا یاد خدا را فراموش نکنن هرچی میتونه ذکر بکنن و ذکر انسان را به یاد خدا میندازه انسان وقت معاملهش معامله درستی میشه در اون معامله انسان بالاخره صداقت را و امانت را پیشه میگیره و وقتی که تاجر بر اساس گفته رسول الله صادق و امین باشه صداقت تو کارش باشه امانت تو کارش باشه خیانت نباشه باشه این تاجر همراه با انبیا و صدیقین و شهدا و صالحین محشور بشه الطاجر الصدوق الامین مع النبیین والصدیقین او با انبیا و صدیقین قعد بود پس امانت و صداقت چطور میاد همیشه خدا رو یاد کن خدا را که یاد کنی خدا به زبانت باشه خدا به قلبت هم هست وقتی که در قلبت باشه قطعا این خدا را ناراضی نمی کنی در محضر این خدا دروغ نمیگی در محضر این خدا بنده خدا را فریب نمیدی ولی متاسفانه وقتی که بر زبان ذکر نیست در قلب فکر نیست تاجرها راحت مردم را فریب میدند جنسی را ای را می خرد به صد هزار تومن می فروشد یک میلیون و صد هزار تومن یازده برابر به طور مثال عرض می کنم و بعد سوگن می میگه برای من چیزی هم نداره اینا تمام به خاطر چی هست؟ به خاطر اینکه خدا را در دل نداره خدا را بر زبان نداره وقتی که خدا در دل و در زبان باشه هیچ وقت انسان اون خدا را نادیده نمی گیره لذا الله می فرماید. واذكروا الله كثيرا خدام ديا عز وجل رب کسرت یاد کنید لعلکم تفلحون تا اینکه شما رستگار بشید رستگاری در ذکر و یاد رب هست و اذا راؤوا تجارتا او لهوا فانضو اليها وتركوك قائما اینجا سرزنیشی هست و تذکری هست برای صحابه در یکی از نمازهای جمعه در سالی که در مدینه قحط بود و در مدینه هیچی یافته نمیشد مردم دنبال اجناس بودند، دنبال خوراکی بودند یا پیدا نمیشد یا خیلی گران بود تنها خوراکی ارزان مگر کاروانی میامد از جایی کاروان که میامد دیگه اونها ارزان میفروختند. آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم مشغول خطبه بود که کسی صدا زد که فلان کاروان آمده داره جنس بی همه نیاز داشتند مثل اینه که در زمان ما یا قبل از ما اعلام بشه که کمیته داره روغن تقسیم میکنه به نرخ تعاونی همه فرار میکنند اونجا همه رفتند رفتند که بلاخره جنس ارزان رسول الله صلی علیه و سلم با تعدادی از صحابه ماند. بعضی میگن هشت نفر بعضی میگن دوازده نفر بعضی میگن سی نفر بعضی میگن چهل نفر بلاخره یک تعدادی مند با رسول الله بقیه رفتند البته اینجا صحابه تذکر داده شدند ولی گناهی نداشتن چون قبلا این دستور نیامده بود بعد از این از کنم نزول این آیه دستور آمد که از این به بعد شما نباید ترک بکنید خطبه را نباید ترک بکنید نماز جمعه را خطبه را باید استماع بکنید لذا رفتن دو پیغمبر را تنها گذاشتن با جمع کوچکی الله می فرمد و اداره او تجارتا هرگامی جایی بینند تجارتی معامله او لهوان یا لهوی یک چیز بیهودگی همین تجارت وقتی که مان نماز بشه مان خود شه اینم لهو است اینم یک سرگرمی بیجا و بی فایده است ان فذو الیها همه میرون به سوی او میشه تابند و ترکو قایما و ترمی گزارن ایستاده تو بر پای ایستاده همه میرند از اینجا معلوم میشه از اشاره این آیه که رسول الله صلی الله علیه و سلم همیشه خطبه استاد خطبه میداد سنت همینه وقتی که خطبه داده بشه استاده مگر اینکه خطیب معذور بشه سیدنا عثمان رضی الله تعالی او در آخر عمر سنش بالا رفت بالای 80 سال رفت و سیدنا معاویه رضی الله تو این هر دو بزرگوار آخر بر منبر می نشستند قادر به ایستادن نبودند لذا و ترکو که قائمة تو ها استاده می گزارند قل ای پیانبر بینها بگو اعلام کن ما عند الله خیر من اللحوه و من التجاره آنچه که نزد خداوند خدا است پیش خداست بهتر است از این لهو و از این تجارت والله خیر الرازقین اگر فکر و خیال روزی هستی خداوند بهترین رزق دهند است خدا به شما رزق میده ولی شما نماز جمعه ترک نکنید امروز هم خیلی از مردم اهمیت نمیدم به نماز جمعه نماز جمعه اینجا قائمه آقا میره برای پکنیک برای تفریح برای مسابقه برای لحو برای از کنم که روستا و کوه کوه نوردی این درست نیست انسان نباید به نماز جمعه این قدر بی اهمیت باشد در احادیث می آید که کسی که عمدن نماز جمعه را ترک می کند در بعضی روایت ها ترک می در بعضی روایت سه جمعه پشت سر نیایت سه جمعه پشت سر نیایت بدون عضو بر قلب او مهر نفاق زده می شه او منافق می شه لذا جمعه خیلی لازم هست جمعه فرض ای به نام جمعه نازل شده و الله عز و جل بر حضور در جمعه تأکید فرموده اما اولین کسی که جمعه را برگزار کرد گرچه خود آن حضرت صلی اللہ علیه وسلم مدینه تشریف بردن اما قبل از رسول الله صلی الله علیه وسلم فرستاده رسول الله حضرت مصعب ابن عمیر روزهای جمعه مردم را جمع می کرد و اونجا برای مردم ارشاد و موعظه می کرد چون اونها از رسول الله معلمی خواستند تا زمانی که خود رسول الله تشریف ببرد حضرت رسول صلی الله علیه وسلم مصعب را فرستادند